داستان آن پادشاه جهود که نسرانیان را میکشت از بهر تعصب. بود شاهی در جهودان ظلم ساز دشمن عیسی و نسرانی گداز اهد عیسی بود و نوبت آن او جان موسی او و موسی جان او شاه اهل کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا گفت استاد دهوری را کنده را رو برونار از وساقان شیشه را گفت احول زند دو شیشه من کدام پیش تو آرم بکن شرح تمام گفت استادان دو شیشه نیست رو اهوری بگذار افزون بین مشو گفت ای استاد مرا تعنه مزن گفت استاد زان یک را در شکن شیشه یک بود و به چشمش دو نمود چون شکست و شیشه را دیگر نبود چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مردم احول گردد از میلان و خشم، خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند، چون قرض آمد، هنر پوشیده شد، صد هجاب از دل به سوی دیده شد،